بسم الله الرحمن رب العالمین و الله علی سیدنا الله و که بخشی که مطرح بود به مناسبت حجیت خبر واحد مقاله اخباری ها شده این قبل از ورود در بحث خود حجیت با همین نسبت از که از بعضی عبارات اخباری ها معلوم میشه که روایات کتب اربعه یا روایات کتب مشهوره قطعاً حجت یا قطعاً ثابت است یعنی ثبوته و نظاهات به این تصور نیازی به بحث وقت حکیت خبر واحد نیست ما یه مقداری متعرضه بختم چون در این جهر مرموم صاحب وسائل در خاتمه وسائل بحث محصفی و راجع به این جهر اقامه کردن متعرض کلمات ایشان بشه دیگه, بشه دیگه بشه ای کلمات مرموم ملا محمد استرابادی و دیگران به همین مقداری که ایشون پرمیدن اکتفاق از کردیم ایشون در فائده شکم وارد این وحس شدن بعد در فائده هفتون از خاتمه به عنوان قراهن آمنه از سرن در این نصحی که چاک رو دردیرن توسیبات آمنه روشه شده از صحیحش قراهن آمنه ایشون یه قراهن آمنه رو برای صحت روایات یا ثبوت این روایات اقامه کردن وانده ما از قراهن آمنه یا شبیه توسیبات آمنه یعنی اصلاف بکنه حجیت یا صحت مجموعه از روایات رو نه مثلا روایات زراره به خصوص مثلا مجموعهی که در کتاب کامل زیارت هست مجموعهی که مثلا مشایش ایران نفیر هست اینطور. طور مراد شد قرار نامه ایشون در این جرت قرار نامه اول مسئله اصخاب اجماع رو متعرض شدن بعد بعد از تحرز مسئله اصخاب اجماع متعرض جمعه از عبارات شدن که مقوم شیخ و نجاشی راجع به افراد رو که مثلا کتاب اینها قابل اعتماده کتابشون سمیه خیلی توصیح اضافه بر او کتاب‌های های اونها رو هم توصیح کردن روز مقداری از عبارات مقوم شیخ رو خوندیم که مقوم سال و سال ناکردن و تعلیقاتی رو که پرز کرد اینجا اروزیشون یه مقداری کتاب از عبارات مغموم نجاشی رو من یه توضیحات مختصری که متناسب و بحث ارز می کنم چون ها یکی ای یکی به شرح طولاری ایشون از نجاشی این عبارات, عبارات, عبارات و قال نجاشی علی یقن و نعمان سه بخون سبتون لغو کتاب و نوازر خیر و حدیث کثیر و فرائه. ایشون از این عبارت میخوان استفاده بکنن که در هر روالیتی که علی ابن نعمان باشه پس اون روالیت مورد قبول بکنیم چون نجاشی راجع به ایشان گفته که صحیح الحدیث و کسیح الحواهد ارز کنم که من بعد انشالا اینجای توضیحات بیشتری خواهم ارز که به طور کلی یه بحثی هست که مرهوم نجاشی به خصوص و شیخ هم گاهی اما شیخ خیلی زیاد نه مرهوم نجاشی. مفرداتی رو که اوورده هر کدام دارای یک بار معنی خاصیه مثلا اینجور اینجور گفت سقطان این دارای یه معنی هست سقطان این معنی دیگه داره یعنی اضافه برسقط گاهیم یه سقطان یک معنی هست اینون این هستان باید یه چیز ظاهبی باشه سقطان اینون وگه هستان از این عبارات گاهیم مثلا صحیحال همیز این سقیه حل حدیث با صفتان پرشتیه یا کسی رو این مطلب که مردم نجاشی گایی اضافه بر توصیه مثلا مسکونون الا رقایته یا سقیه حل حدیث خوب درست میزن یه است که بار این الفاظ چیه تکراره یا هر کدوم داره یک معنای خاصیه بعضی‌ها مثل مردم صاحب و ساره این کار قبل از وسائل کم شده شده بوده از کدام می... یک الان من توضیحاتش رو آخر بحث میکنم از این عبارت ایشان مثل سال وسائل دروردن که هر روایتی که در سندش علی بن نعمان با رو قبول بکنه من همینجای این اصطلاح رو میخوام توضیح بدم ادعایم از بعضی از این عبارت حالا مثلا مشكون الی روایت صحیح الحدیث له کتبون حساب از این روایه بار اضافه بر قبول روایت توصیق مرگی انحرم گفتن این بفت کرده مثلا گفتن علی ابن نوعان از هر کسی که حدیث نمارد بکنه اون شخصا سرع اگر مجبور باشه این توصیه. این البته بعدها شده بعد از مدروم شیخ خورب و بعد از اخبار اخباری ها بیشتر نظرشون رو روایت بود ها مخصوصاً بعد از مرحوم وحید بهبهانی که انصافاً افاض رجالی ما یک شکل خاصی گرفت. ان شاء الله خلال بحث‌رنده توضیحات رو اضافه کنم. اضافه بر ابود روايت آمدن از این عبارات توثیق هم در آورده. خوب دقت بکنید. چون اگر علی بن نعمان از یکی نقد نکنه اصلا مرجوع نمی‌شناسید. میگه یعنی از این عبارات نجاشی صحیح و حل حدیث در می‌آد که اون آقام شده. مشاوره استفاده این چیزها بوده که بعد شده پس اگر گفت صحتونه عینون از یک درده نمیاریم روایت معتبر به تعبیر شیفه شیخه ازش در نمیاد توضیح به تعبیر آقایان اما وقتی گفت صحیح و حل حدیث این یک بار اضافی داره یک معنای اضافی داره معنای این از این است که اگر بعد از این هم کسی بود اونم خدان یعنی من از شما میام چه حالا اگر ما ببینیم این اصطلاح را قرار بدیم اگر بخوایم از این عبارت تصحیح روایت بکنیم اسمش رو درین قرائن عامه اگر بخوایم از این روایت توثیق شخص بکنیم اسمش رو درین توثیقات عامه باشه مستقل بشه پس به نظر ما این فایده اصلیه قرائن عامه یعنی هدف مرحوم شیخ هو تصحیح روایت بده دقت فرمایید اگر هدف اینجوری این اصطلاح اصطلاح آره شما ممکنه قدو نره اختیار خودشونه ما این اصطلاح رو الان مثلا عارف که میگن توصیغات عامه چون دنبال خبر سقه کرده استن دنبال این aksane که با یک عبارت اثبات رساقت بکنه پس از این عبارت گانی این که یه از این سقاتون شد خیلی در عین وضوحون گاهی اضافات داره مفعول و واسائل روی این اضافات اومده اصلا صحیح اول حدیث این میگه صحیح اول حدیث یک معنای اضافه داره غیر از سکت و اون معناش اینه که هر روایدی که علی بن نعمان توش باشه معتبره این فهم صاحب و صاحب. از کردیم بعدها ازده از رجالی ها آمدن گفتن نه اضافه بر این که معتبره توسیق هم اهد نه بقید رواید معتبره اون شخصی که بعد از علی بن نعمانه اونم سکت ه از این صحیح الحدیث بگذرم این مطلب البته خود مطلب کاملا دقیقه یعنی خود این مطلب که مروان نجاشی عبارات رو کاملا با دقت به کار و هر لفظ دارای یک محتوای خاصشه هر لفظش اخی یه ثقل‌ها یک معناس وقتی یه سقطون یک معناس صحیح الحدیث نکته جدیدی داره کثیر الفوائد این راست اصل این مطلب درسته انصافا مطلب صحیحه و قابل قبوله و واقعا هم باید تو عبارث نجاشی خیلی دلقت بشه و این دقت تو شیخ نیست تو فیرس شیخ وجود نداری این عمل کلان در تحقیق این معناست مرحوم سال و سائل و اخباری ها بیشتر نظرشون این که از صحیح الحدی سنین روایت معتبره ولو بعد از علی بن نعمان مرسل باشه ولو بعد از علی بن نعمان مجهول باشه لیکن ازده از رجالی ها مخصول وقتی در مقام تکیبی شواهده ادهی گفته این خود شواهده حالا دلیل کامل نباشه در اقل یسته شده به پس دقیق بفرمایی این عباراتی که نجاشی اوور من مرحوم شیخ اوور من قاعده کلیش رو ارز کردم شیخ اوور میخواد از این عبارت جز و قرائنه آمه به دست بیاره ارز کلم ادهی از رجالی ها خواهی خوی رو. نیستن نمی از نمی ها، از مثل این عبارت توصیقات عامه در هم حالا ممکن است شما فکر بکنید نه آقا نه توصیقات عامه نه قراین این صفت به هیچ کدوم نزده نه جزو فرائل عامه مثلا این تجلیل در از شخص ازمت شخصه من این توضیح رو دادم که در مطلب هست یکی حسین بن ابی عبدالله بله من من تعن علی داره میگه بالغوا ده ایشون قبولش کرده ایشون قابل قبولی قابل کنه لهو کتبون صحیح حسول حدیث. حدیث از این عبارت استفاده کردم. خود این شخص رو چندیست یکی احمد ابن عبدالله ابن مهران کان من از خواب نستقات لا یعرک و لهو الا کتاب و تعدیم و هو کتاب و یومن ولیله حسنون جیدون صحیحون کتاب احمد ابن عبدالله ابن مهران الان در من عبارت کامل خوندم احتمالی که الالآن ما در ذهن خیلی قویه این کتاب فرق رضا همین باشه حالا احمد بن عبدالله بن مهران باشه همین کتاب و یومن ولیل به تعدیب ایشان و ها کتاب و یومن ولیگه. حالا توضیح این محلت به شرحی داره فقط میخواستم این عبارت کامل بخونم تصادفاً چون این کتاب رو به شرمقانی نسبت میدن تکریب شرمقانی باشه در کتاب قیبت شیخ توصی. قدس الله و سره در جای دیگه نه کتاب شلمغانی را تعدید نمیشه در بقیه در کتاب مثلا نجاشی کتابو تکلیف نمیشه همین که میگه سفرزان کتابو تکلیف اسم این کتاب در نجاشی کتابو تکلیفه لكن در غیبت شیخ توصی کتاب شلمغانی مقانی رو کتابو تعدید نوشته عین کتاب ابن خانده عین همین کتاب له کتابو تعدید و کتاب و یوم ولیله. کتاب و لیله کتاب یوم و لیله اصطلاحاً رساله توضیح مسائل در ما رساله توضیح. این کتاب و یوم و یعنی بیان وظایف فقهی انسان در اون زمان از کتاب یوم و این اصطلاحی بوده این کتاب و این این حسن و جیدون احتمالاً این کتاب فرق و رضای موجود اگر مال شلمگانی هم باشه احتمالاً ریشه هاش این کتاب و تعدیب احمد ابن عبدالله ابن مهران در میگرده این راجع به این مطلب بله بعد یکی دو نفر این خود تونها مراجعه بکنن که من نمیخوام الان با این بحث بشن چون دیگه زیاد بله بحث راجع به عبدالله حلبی داره که کتاب روش عرض و علیه صادق علیه السلام بله حالا بله من این اوازی میخونم راجع به عبیدالله حلبی ایشون نوشته و آل ابی شعبه این مرحوم نجاشیه باز نجاشی عبیدالله نهلی حلبی و آل عبی شعبه کوفه بیتون مذکورون من اصحاب نارواد جده هم ابو شعبه من حسن و حسن و کانو جمعیان سقاطن مرجوعن الى مایع علوم که به اصطلاح این توصیقه عام می ازش استفاده که کل بیت آل عبی شعبه به اصطلاح سقاطن از کلم مرحوم بح رضوان الله تعالی در این کتابی که به اسم فواید رجالیه یا رجاله بهران چاپ شده یکی از کارهایی که ایشان کرده که قبل از ایشان به این صورت نبوده این خاندان های علمی کوفه رو جدا کرده مثل آل ابی شوبه علمی از البته اینا حلبی نیستن کوفی هستن اصلا در حلب نبودن حلب شام این الله تجارتش روغن فروشی بوده به حلب میرفته تجارتش تو حلب بوده ولی نه نیستن اینا کوفی بسید اینجا از خواب کوفی ما هستن. حالا من شرح این مطلب رو اگران آقایم خواستم و همون کتاب بحرون مراجعه کنم من یه نکته رو فقط در اینجا ارز رو کنم وکان عبید الله هم و وجه هم خب کبیر به معنای شعن و شنه. و شعنه. کلمه وجه هم محل بحث الان من بازه بحث نمیشون فقط اشاره می کنم آیا مراد وجاهت در نقل حدیث و علم یا وجاهت اجتماعی مراده؟ خانه وجه ها مراد وجاهت اجتماعیه یعنی چهره موجه اجتماعی اینها این بود وجاهت اجتماعی غیر از در علمه در نقل حدیثه حالا من وارد اون میشم احتمال دیگر هم هست جاشا نیست و, و سند نفل کتابا منصوب الی. من چون این عبارتی میخواستم بخونم بعضی از این افرادی که در زمان ما هستند، از این عبارت سهمیدن این کتاب حلبی مجعوده باطله به خلاف فرموم ساحل وسائل و مشهور که از این عبارت فهمیدن کتاب حلبی بسیار کتاب معروفیه چون داره از کتاب منصوب از این عبارت نجاشی این طور فهمیدن حالا با اینکه بردم نجاشی داره و عرضه و علصادق علیه السلام و او، من نمیتوام چطور این ذهنیت ذهنی این شخص خطور کردیم این معنا که عبارت منصوبن علیه یعنی این کتاب مجعوله و قال عليه السلام عند براءته اثر لها الا مثل هذا ازا فهمند که اهل سنت هیچ کتابی نداره این مطلب خودش فی نفسه درسته خود این مطلب فی نفسه به این معنا که تا این زمانی که کتاب حلوی نوشته شده بوده اهل سنت یک کتاب مجموعی در سنن پیغمبر ننوشته بوده چون کتاب معروفشون که نوشته شده و الانم موجوده موتع مالکی که بعد از امام صادره صدفنجه ها صد نوشته اینه الان مهمترین کتابی که دارن که مجموعه سنن رو جمع کرده و مصنف مرتب و عبواب کتاب موتع مالکه پس این مطلب که امام میخواهن به که اهل سنت مثل این کتاب تو ندارن راسته خود مطلب این راست اما این مطلب واقع شده یا نه اینجا مروون نجاشی اراذرو داره بعد انجام ده وقیل اورذ علی ساده برای جانب با سیقه تمریز گفته شده این ممکنه در صحت نقل کمی اون یکی خیلی ملوناقتی باشه شبهه بکنه حالا اینجا نجاشی ظاهرا نسبت داده این راجع به اما الكتاب المنصوب علی من این توضیح عرض کردم این چون شخص اطلاع ندارش داره که مراد از جعلی بودن این بودن کتاب خب این با سحرو نمی‌سازه عرضه و عرض صادر ندیسه ارز کنم که من شواهدی را ارز کردم در اون زمان یعنی فرض کنی قبل از کتاب کافی و تا بعد از کافی ما در کتاب مسائلی ارز مقوم سید مرتضی چاپ شده به اسم رساله رسال، یک جا چاپ شده مجموعه رساله رسال های از ایشان در یکی از اصئله اینه که آیا کتاب حلبی سهیه یا کتاب کلینی این در اون زمان یک کتابی رو به عنوان کتابول حلبی می و مراد از نسبت در اینجا اضافه است نه نصفت مثل بغدادی یون مرحوم نجاشی مخواد بگه وقتی میگه با اینکه آل حلبی ادهی هستن خب دلیفر هم همینطوره محمد ابن علی حلبی سورم صحاب کتاب یحیا هست که کتاب مرحوم نجاشی مخواد بگه وقتی می گفتن کتابول حلبی مراد اوهی گلاله اون بقیه ثقات هم بقیه هم اصخاب کتب هم. که مورد چی؟ وقتی این در اطلاع موطن کتاب الحلوی قرع علیه کتاب الحلوی مراد کتاب اوبیالله کتاب محمد نیست کتاب یحیی نیست و کتاب الکتاب المنصوبه تعبیر سنف از ارز کردم نقطهش اینه که این کتاب جزء تقریبا اوائل کتب اصخاب ماست که مصنفه مراد از مصنف یعنی کتاب الصلاة، کتاب ذکات، کتاب الصوم مراد این بود. چون من در اون زمان کتب اصحاب ما هنوز مصنف نبوده. مثلا میاد زراره 20 تا یا محمد بن مسلم کتابی باشه 400 تا سوال و جواب بوده، یکی زکات بوده، یکی صوم بوده، متفرقه بوده. هر سلام من شواهد تاریخی رو صحبت کردم که این نافع خیلی نافه. اولین کتاب مصنفی که در اسلام نسبت داده شده به امير الا اون ثابت هستی نه اون بحث دیگری به نام القضا و سنن الاحکام که نجاشی هم اسم میبره میگه بعد می حدثنا ابو انا علی ثم ساق الكتاب کتاب الصلاه کتاب الزکات کتاب الصيام این کتاب مصنف میده یکی از ادله هم که بعضی از بزرگان اهل سنت در مثل این کتاب ها میکنه. همین مصنف بودنش بود می هنوز در زمان همی و مومنی اینطور نبود شد مصنف بشه متفرقه بوده مثل هم فرصه مثلا صحیفه صادقه نسبت داده شده به عبدالله پسر امرعاست اخیلنش دیدم چاپش کرده من نگیدم و ندارم با حالا جمع میکنه واسه چاپ بکنم مشکل نداره برام خب این کتاب صحیفه صادقه متفرقه این مهمترین است که اهل سنت به زمان رسول الله نصفت دیدن. یکی از مهمترین نوشته های مربوط به صحابه بعد از رسول الله این کتابه. حدود هزار تحدیث چیزی بیشتر داره. اختلاف نصف هم داره که واضح بحثش نمو خواهد این رو توضیحاتشم از کردیم. از ماه رمزان سال هشتم هجرت عبدالله به سر امرعه شروع به کرده. 15 سال و نیم هم تقریبا عمرش بوده. دو سال باقی مانده زمان رسول الله دو سال و سه چهار ماه رو ایشون پنج ماه رو این کتاب رو هم مینویشه این مجموعاً دو سال و چهار پنج ماه قبل از وفات رسول الله این کتاب تدوین شده خودش وقت وفات رسول الله بین 17 18 سال اواخر شده کمتر از 18 سال عبدالله پسر عمرواست لكن این کتاب مصنف نیست وارد دیگه نمیخوام بشم الان چون بس از بحث من ما خارجه که کتاب این کتاب مصنف و امیرالمومنینه این هم به ابی عبدالله حلبیه این کتاب من به اصطلاح و نظام مراد از عبارت منسوخ دقیق بخواهید مرادش در اینجا معنای عرفی نسبت نه معنای اصطلاحی یا انکیل پرسی زادول نسب این مراد اون نسب نیست یعنی یا مشریون مراد وقتی مثلا کتاب الحلبی اینو میگه وقتی میگن کتاب الحلوی مراد کتاب عبیدالله نه کتاب محمد نه کتاب یحیی اونی که اندر اطلاق یمصر یعنی لفظ حلب بیشان اون عبیدالله و درست هم هست این مطلب نجاشی مشکل نداره که انشالله شاء واضح شد. این هم یکی از قواعد پس تا اینجا دو تا از قرائن آمنه رو مرحوم شیخ هر نقل کرده یکی عبارات اصحاب اجماع یکی جمله از عباراتی که در فهرست شیخ و نجاشی آمده راجع اصحاب راجع به اصحاب صحیح و حدیث حالا بقیهش نمیورده بعضی گفته مسکون و نلا روایت بعضی گفته اباظه مسکون داره روایت کلیتره مسکون لا روایت یعنی قرینه عامه بکریه مسکون این روایت قبول میکنیم دیگه ائده این صحیح و حدیثو گرفت این هم واجبی این تا اینجا دو تا از قرائن عامه و از کردید ائده از رجالیون همه رو توثیق عامه گرفته پس هیچ وقت تعلق نیم اگر هدف اثبات سهت روايته قرآن آمده، اگر هدف اثبات سهت مربیان آنه، یعنی مثلا این آقا از کی ابن نویش او، از کی نامزد کردن، چی از موسادو نامزد کنند، یا فلسفی کن مثلاً فلسفی مثلاً الی بن آمان، از کی نامزد میکنند، توصیف باشه بیشتر توصیات آمده. بعد ایشون بله ایشون داره که ولگر مرهم نجاشی، ان نیونسیب نبدر احمدان عرزة کتابه هو علیه اسکریالیسند. حالا که این عرزة کتابه هو منکوندم، این در این نسخه کتاب این چاب کرده این اشتباه چاب شده. زرتش اینطوری باید باشه، ان نیونسیب نبدر احمدان آرزة کتابه او. حالا این اینجا چابون نشده کرد. عرزة کتابه هو نیست، آرزة کتابه هو علیه اسکریالیسالام. بله، این مطلب درسته در کتاب نجاشی آمده. این مطلب. یشون در کتابش باشه همه آن نهرو. از ماشکومو فی نهرو که باشه که پیش از ازکریت می‌کتاب یونس تو آسی نبود. افتاد هزار ذره کردند کتاب رو بعد هم برای الله لاهیونس و برای همه لاهیونس. کسای کتابی که از مصر نبدرحمان. این کتابیشون آرازعلل ازکریت استام الله علیه. این همیشه از قرآن آمده. هست چند فکر کتاب هست که دعای عرض شده. یکی کتاب ابوی دلاء حلبیت. یکی از کتابیونس نبدرحمانه. سردهش خوبه این مشکل نداره. این هم راجع به جزءین قواعد عامه، لكن باید اسفاط بشه که از کدام کتابه. چون من یه وقتی که عرض میکنم که مشکل ازش این هم یکی و قال الشيخ ایوان فهرست. ایشون به دنبال این مطلب فهرست شیخ را از اول تا آخر دیدن، تمام موارد دید که شیخ گفته له اصلا جدا کرده. حدود دو صفحه دیگه نمیخونم، انتظار بخوننده ندارم. فلان میگه فلان له اصلا اصلا به به اصطلاح و ایشون مخاطب بگه از کلمه له و معلوم میشه که هر روایتی که این شخص درش باشه معتبره همین مطلبی رو که ایشون فرمودن عده‌ای از رجالی‌ها اینو دقیق نمی‌قرادن برای بساقه همین مطلب ایشون یعنی همین که درباره کسی گفته لحو اصلون مثل محلوم صاحبه صاحبه و مثل مردم التوابع و جز جزء قرائن عامه گرفتن عده‌ای از رجالی‌های متأخر از مثل بهوانی به بعد این رجوع به خصوصیات آم می‌گردد. اصلا نفران ما را سعاتون لعنت شد قله و اصلش رو چه شد؟ این چون در اینجا مجموعه ای رو آوردم من شماره گذاری کردم خود کتاب شماره گذاری تبرش شماره گذاری من پنجاه و سه نفره. یعنی کیشیف گفته لغوه اصلی. اما دیگه نشید من مراجعه کنم سال من خونه نبود دست کسی جایی بود جایی دیگه بود کتاب فهرست شهر منش مراجعه تام ببینم اون کی سراغم اما تو ذهن من بین 69 تا 71 ندارم تو ذهن من این طوره حالا من ماجئ المنخربه خرابیش خرابی از کجاست نمیدونم به هر حال مرحوم صاحب وسائل مجموعه افرادی رو که شیخ گفته دهو اصلون اینجا استخراج کرده دراگه یکی از خرااین عامه چون گفته دهو اصلون در هر روایتی این آقا وارد بشه اون روایت صحیحه. این مورد ایشان اینه پنجا و سن افراد به نظر من،, من یا حالا نسخه مختلفه مختلفه اون نقطه اصلی چیه حالا شو من چون نمیخورم الناسه بعضی این که لفعه اصلا ثابت نیست اصلا مشکل داره احتمالا اصلا عبارت چیز دیگه بوده شیخ اشتباه رحمیده شده حالا اون بحث دیگه مبدع این اصول رویشون از کجا چون این محلوب اگر مثلا در خیالت از خواب مسلم باشه مثلا چهار نجاشی نیا این پنجه نفری که ایشون اونجا اس برده من تو زهرم که مشترک داری هیچ کدام کدامش نجاشی اس نبرده از این پنجه نفر یک نفرش نجاشی اس نبرده بعد ایشون داره برقالن نجاشی اون 6 نفر رو اس برده که نجاشی گفته دفعه اصلا این نفر نفرم با یک اس نبرده؟ دوتا خیلی عجیبه پنجه هسته نفر اون آقا اسم برده که شیخ اسم برد نجاشی وقت این خب این سؤال مطرح میشه که واقعا اگر این کتاب ها با عنوان قرینه آمنه و با عنوان کتاب معتبر در طایف جا افتاده بود میشه شیخ اسم برده و نجاشی اسم برده این یکی هم بحث یعنی بحث حجیت و عدم و حجیت اینا مفرحه همیشه من اعنس کرد یه بحث دیگه که سر اختلاف چیه اصلا چرا این اختلاف پیدا شده سوال چرا منشه این که شیخ عدد اصول رو بالا برده چیه اونچون شیخ عدد سالوناسی که از صورت جمعه میکنه زیر بنای کار چیه من یه توضیحاتی سابقا در مواسطی دارم چون جاش اینجا نیست اینشالا بالی بیرگ توضیحات کافی را جمعه جمعه پس این. این هم یکی از قرائن تغییر به تحبیر مرحوم شیخ خرر آملی هر کسی که ذکر لحو اصله اون روایاتش معتبره. بلکه به تحبیرشان ثابته این راجب این مطلب بعضی این رو توصیق عام گرفتن آقای خویان دارن که مقدم معجم دارن ایشان قبول نمیکنه این مطلب یکی از چیزی در مقدم دارن همینجور توصیقات آمه که لحو اصله این از کلم، این جور توصیفات هم اقتداء ارائهش در تاپیفی ما از زمان وقیدی بهباینی است در از اخباریها که این تغییر زیاد شد نسبت به ماژنی و دیگران، هی اضافه کردن، هی ای مثلاً یکی چهارمیله و اصل. ولی این کلام شر این کلموها هیچ اتفاقش ندارد چرا یه کمتر زیاد شده؟ نه، اون جای خودش. اون نکته فنی ما همیشه اول میگن، نکته فنی با سوالات کرده، اون نکته فنی بعض این است که خب امر وجدانیه دیگه اینکه دیگه تهبد نداره که از کتاب شش استخراج کرده پنجه و از کتاب نجاشی استخراج کرده 6 نفر با هم جمع بگیم میشه پنجه و نه نفر در مقدم میدن فایده قبلی گفت چهارسد تا اصلا خب این پنجه و نه تا چهارصد خیلی فاصله داره اصول اول اون نقطه ای که ما با صاحب و صحابه اختلاف داریم اینجا سنی نه اینکه ما اختلاف این باید کار بشه روش اون نکته فنی دقیقه یاده. خب آقای صاحب صاحب شما وجدانه بلی وجدانه به تر بر وجدانه تنجار نوح اصل ازوردیم از اون برم در صاقه از ابن شهراشون نه که چهارسد اصل اصول عربرمه این اصول عربرمه چطور شد شد پنجار نقطه این همون تصور اساسی یعنی امثال سال و سایه و کسانی که این مسئله رو رفتن اینا تصورش اینه که هر دار قبول بکنی ولو ما بلوشدان پنجان نه هست داریم دیدیم دید دید. بلوشدان پنجان نه چون ابن شهر آشود سغر خوده قصد بکنیم این مطلب رو هم از مفید نقل کرده ولو ما بلوشدان هم تایگاه نکردیم ما این رو به تعباد از مفید قبول میکنیم که اصول چهار ست این همون درواییست که امروزه یعنی امروزه ما در مبارس حوضبی خودمون زیر بار این حرفا خیلی مشکل رو بریم. آیا میشه تعباد قبول کرد کلامی رو که ابن شهراشون گفته؟ بلکه بالاتر ابن شهراشون گفته از زمان امیر تا زمان امام اسکری چهار است. اصول از از شهید اول دارد که اصحاب امام صادق رسول هر بر من این دو ها متنافی هم دیگه بعد مرموم شیخ هر گفت مفهوم عدد حجت نیست یعنی اینقدر ایشان به تعبوت اعتقاد داره هر دو چهارسد تا رو قبول کرده یک چهارسد تا از زبان امیرالمومنین تا زبان امام از یک چهارصد تا خصوص اصحاب امام صادق دقیقه درد اما خود ایشان بلویزیان پنجه ذکر کرده اون که این همین بحث معروفه اخباری ها از من چون این بحث چند بار تأکید میکنم چون در این کتاب سواهد المدنیه این همه ایشان به اصول حمله میکنه تمام لبیتیز همش اینه که ابحاظ اصول کلن با وعیمه علیه همون سلام با این اصول و وزیفه ما رو معیقن کردن به اون مراجعه کنیم که ما ارز این اصول عربرمه اصلا واضح شد خودش فی نفسه ابهامات کلی داره اواثت ابن از زمان امیر تا زمان امام مشاهد کردیم اواثت شیل عربر و از کردیم به مفید نسبت داده شد در هیچ یک از نوشته هایی مفید الان موجود نیست نه مفید نه شیخ تولسی داشت، و چطور میشه این اصول اربعه رو در قرن ششم ابن شهر آشوب در صورتی که مروه نجاشی که واقعاً خریطاده صناعت کلا 6 تا اصل ذکر کرده کلی که ذکر 6 تا هست پس بر این این دیگه الان شما نقطه نظر اساسی با اخباریات این است اینا اومدن گفتن بیایید ویژیان رو با تعقل جمع بکنیم هم بگیم 59 تا الان مذکوره هم بگیم 40 تا ثابته دو تا تا یک چار, چار از زمان امیر موید تا زمان ما از کرد یک تا امام سادیه و طبق صحبتی که تا ما کردیم انصافا این مطالب رو قبولش بسیار بسیار مشکل یعنی واقعا اگر کلمه اصل دارای این قداست بود دارای این ارزش بود کیا جزء قرائن آمنه باشه یا جزء توسیقات آمنه باشه اگر این مطلب ثابت بود قطعاً نباید از مثل شیخ ترسی فرط می یا از نجاسی فرط می شود. و ارز کردیم مثلا کتاب سکونی رو هیچ کس با اصل نگفته ابن عزیز میگه واقعا از این اصول از, از کتاب سکونی ابن عزیز دیگه بعد از نجاسی تا سا ایشون جلس میشه حالا خود صحابت و یک مشکل اساسی راست که اصلا این کلمه اصل چه بوده که باید نجاشی شیش تا چه بیاره اون آقا پندوست تا چه بیاره این هم راجع به این قرینه دیگری که در اینجا بعد یه مقدار از ابن هم هم کرده کتاب حریز اصل بعد کلام بله. شیخ رو در باب عمل اصحاب در هفت سبن قیاس چون این کلام شیخ رو ما اینشالله تو بحث مقاست مجروری کامل بکنیم دیگه در اینجا ما متعرضش نمیشیم خلاصه کلام شیخ این است که اصحاب ما در رواست مخالفین با یک حساب بیعمل کرده توضیحاتش اینشالله جدیده یه عبارتی هم راجع به مراسیل و مسانید ابن عبی عمر داشت که خوندیم، دیروز خوندیم، دیگه نمیخواد تکرار بکنم بعد داره اجماعت اصابه علال عمل به روایات سکونی و امار و من مواصله همام نستغاد و قال شعر اعظم تل عده دیروز هم از تو بحث مستدرد این عبارت توی عده نیت هستن این عبارت این آقام نوشته به اختلاف اصلا نیست این عبارت کتاب عده نیامده از کنم دیروز این عبارت با مرهوم محقق به عده نسبت داده محقق حلی در کتاب به اصطلاح معتبر ایشون نسبت داده یا مسائل ازویالی که از این کتاب ایشون و اندار این عبارت نیست به روایت سکونی و اما را من معاصله هون استقاط نیست این در حقیقت یه استفاده ایست که محقیق از مجموع کلامش رو کرده مثل این عبارت نیست بله بعد کشان اسمای ادهی از اصحاب رو برده که اینها اجلا هستن و کلا بودن چه بودن یک و کلای را ا یک شرحی راجع به این افراد از اسم یک لیستی رو بله به کار برده که اینها مثلا جزبه بزرگان هن ازیشون بعد از او یک داستانی رو نرگو میکنه که در کتابه جالی بعضا آوردن از این مستر شدن محظوف موجود نیست و افعود رسال کلینی که حضرت کاری داشتن به انبر فرموندن که به انبر فرموندن ادخل ا بعد قبل گفت کی حضرت ده نفر رو که اینا رو وارد بکن اینه که اصطقاط من این هم ایشون در اینجا اسم برده البته این ده نفری ای که در اینجا به عنوان اصطقاط آماده خیلی بیاشون راوی نیستن چرا بعضی راوی هم مثل حال اول و اینها راوی هستن خیلی بیاشون به درد روایت نمیخورن بله بعد در یک عبارت اینا جز قرآن آمویشون قرار داده یه عبارتی در کتاب عیون اخبار مرحوم شیخ صدوق آمده ایشون یه رساله ای رو از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. با عنوان کتاب فضل نشازان الی المعمون فی ان رضا علیه السلام فضل نشازان کتابی رو نقل کرد از رضا به معمون نوشتن و در اون کتاب موجزی از عقاید و فقه اسلام هست و سه چهار صفحه یه رساله کوچیه. سه صفحه ما اینا رو توضیح دادیم این رساله ای مثبت نیست احتمالا کار بعضی از راقی بوده. دو سه تا نسخه داریم. حالا من شرحی نسخه ندارم. یکیش همینه. تو این نسخه یک مزیتی داره. در اول این نسخه ول ولایت الامیر المؤمنین و المقبولین من الصحابه الذين مضوا على منهاج نبی ام صلی الله علیه و آله و لم یغیروا و سلمان فارسی و و مقداد این نسخه ای که حضرت غزا نسبت داده شده که نوشتن به معمون توش اسم ادهی از صحابه برده شده خب این به درد کار بحث حدیثی نمیخواد یالیشون مخواستن جمع بکنن ادهی از این افراد رو جمع بکنن که اسم اینها برده شده و این هم راجع به به اصطلاح این قسمت از کتاب کشی عبایت ظرفه که ادهی فلان به اصطلاح یه عنوانی قرار داده مرمون و صاح افرادی که عیمه اونها رو توصیح کرده، عنوانش اینه این عنوان جدیدیه به اصطلاح از اینجایی که استقنبر رو شروع میکنه افرادی که عیمه یا قبلش هم اددی از وکلا این قرائن عامه گرفته که هر فردی رو که عیمه توصیح بکنن ایشون اگه در روایت واقع ایشون اون روایت مطلقا هست وقتی در اینجا روایتی در کشکی عبرده که و ادهی از توقیات از کشی یا قیبت شیخ دیگر آمده که در توقیات مثلا علیه موسیقی موسیقی موسیقی این وکی ما بوده و محمود بوده اندنا محل قبول بوده و به همین مناسبت مثلا عبارتی رو از کتاب کلین کان ابو عبدالله علیه السلام قال ابو عبدالله کان سعید ابن مسیب و قاسم محمد و ابو خاز کابلی من سقاط علی ابن حسین علیه السلام این ها جزا اصحاب اص این روایت خیلی که لوشای نظر بالا قبول خود این مطلبی که مشکل الان فعلا وارد بحثش نمیشه بله. یا مثلا امام دریه روایت گفتن که جابر بن عبدالله دروغ نمی یا در یک روایت کو عمر بن حنظله لا یک زبر اینا ایشون یک مقدار تصیقاتی رو نرد کردن که من اصل و علل افراد میگن حالا که متنو برین افعال اینا اگر در روایتی باشن روایت اونها معتبره ولی بعدشون ضعیف باشه این هم راجع به, به اصطلاح این مطلب اون وقت بی این و م... این کسانی هم که ایشون به خب وجه استظهارش خیلی ضعیفه انصافا مجزز که امام فرید مدرسیتن اگر ضعیف باشه نظری اون ضعیف اون مجززه انصافا خیلی مشکه یک مطلبی بعد نظر شما مقایسه همه رو نقد بکنن یک مطلق گیره نقل کرده از کتاب کمال دین صدوق یا اکمال دین صدوق اسم افرادی رو برده که حضورا خدمت بقیه الله رسیدن حالا یه حالا ازید اثبات حجیت روایتش خیلی نوشید این قسمتی وقوت این قسمت یه عبارتی رو در آخر از شهید ثانی داره در گرالی ارز کردم این مطلب شهیدسانی به عنوان رسمی در کلمات اصحاب ما قبل از ایشان کسی نگفته و این همین سیبه ها هم محل بحث شده خلاصه عبارت شهیدستانی من دیگه نیمون آن مراجعه کنم خلاصه عبارت شهیدسانی این است که مشاهده اجازه احتیاج به توسیق نداره از کردم من از زمان علامه به بعد یواشوار بحث‌های رجالی ما یک شکلی تازه گیره. من جمله شهیدستان هست که اینجا نقش داره، انصافا نقشی داره. ولی خب ابتداییه دیگه نقشی چون بر خلاصه‌رو خب موازنت جدی رو تعیین میکنه مطرح میکنه که قبل از ایشان مطرح نبوده. یکی از چیزایی که این مطلب رو در حاشیه خلاصه‌نام در جرایهشون در داره که مشایخ اجازه توثیق نمی‌خواد. اگر یکی از مشایخ اجازه بود دیگه ما دنبال توصیه این راهی خوبی تو مقدمه معجم دارن مفسر هم دارن که آیا مشایخ اجازه مستقنی از توصیرا مینیه ایشون قبول نمی کردن ما راهی خوبی قبول ما تفصیلات خاصی در این جلد داشتیم صادران بیان که دیگه فعلا وارد بحث نمیشن و اجمالا مطلب ایشان درسته اما نه اون شکلی که بقیه از اسخا فهمیدن یه مطلب آخری هم دارن که مسئله وضع حدیث بوده و ایشیکی مرده حدیث بین اصحاب نبود خب خلاصه بحث در این فائده هفته ایشون ایده از قرائن عامه رو نقل کرده از ای این بعد از سایر مصادر ایده رو جزء توصیفات عامه گیرسته فرضوا شد درصن تعبیرش اشکال نداره توصیفات عامه اگر مراد راوی باشه و قرائن عامه اگر مراد روایت باشه که توضیحش ارزش بده خود این مطلبی نقصه که ممکن است ما یک قرائن عامه داشته این خود این مطلب درسته مطلب به بحث نیست. اگه این مطلب اوغلایی یعنی در سی عالما هست الان مثلا در بین اهل سنت هر راوی در کتاب بخاری صحیح می说ن صحیحشون دونن این حرف مطلب صحیح است مثلا مطلب صالحه مثلا ما الان کتاب کُلینی رو داره یک مزرعه خاصی میدونیم یه تفکر معینی انتخاب کرده و واقعا هم زحمت کشیده انصافا هم تو این, این کتابه گل کتابه مثلا کتاب فغی با کُلینی اختلاف داره اما به هر یه تفکریه یک کتاب یک کتابی نیست که همیتونی روایت آورده باشه در خیلی اجهان با کلینی اختلاف داره و موافقتش با کلینی کم زیاد نیست خیلی کمه و که که تفکری در غم تفکر در قم بوده و قابل اعتناز قابل ارزشه اما دو کتاب تحضیب استفسار جمعه تفکر نیست بله دو کتاب تحضیب استفسار قالبا نه اینکه دارما مصادرش مصادر معروفه مثل که دا حسین سعیده از معروف باست این هست ابن فضل حالا خیلی از این روایات رو نه شیخ کلمی بشه عمل کرد نه شیخ صدوق لكن جزء کتب مشهوره بوده که برایم شیخ بوده پس ما الان خیلی راحت می‌شیم این ها رو تحقیق بکنیم ارزیابی بکنیم انصافا مثلا کاملا زیاده که در مزاره و روایت زعیف و مرسل و موضوع اینا داره یعنی انصافت در موضوع مزار حساب خوبیه صحابت منحیصان مجموع چون این موضوع خودش طبیعتاً رواده ضعیف داره در موضوع مزار حساب خوبی پس این قرائن آمه ای که مرهوم صحابتا ادعا کرد، خود این مطلب فیرنسو درسته ما حتی در معبولات مثلا میگم فلان فیلسو بازد و افکارش فرسون از گرفته لکن مثلا یه تفسیر خاصی برای کلام مدرس اضافیه خودش هم مثلا تحلیل تصریحات داره, داره که خیلی قبول نیست یا میگم فلان فلسفه نباید استفاده این هست همه این یکی از عمومی زنی یک بحثی نیست که ترس که مثلا سال بعد سوال اگر حدیث در امروزه خیلی جوابه خیلی در نیاز داره سوال نقل میکنیم با وسوال نمیشیم خوب نیست؟ گاوی مثبت گاوی منفیه این مطلب یک مطلب تازه نیست است این در یا توصیفات آمده مطلب تازه نیست. این نمار کلام در اثباتشه خوب دقیق کردیم مثلا اصحاب اجماع رو ایشون اوورده اصحاب اجماع هم تو توصیقات رو آمه تو قراره نه ایشون روزه قراره نه آمه ذکر کردن اصحاب اصحاب اجماع مرضی از ماقام فقاحت بون رب تو برواز ندارد مثلا ایشون ادهی که دیگه توی صحیح الحدیث گفته شده حرف بدی نیست اصحاب اضافات داره لیکن این است در این که با نسخه ای کتاب رو بشتازید و کتاب نسخه متعدد ندسته باشه مشکلات دیگه داره خب یونوس بن عبدالرحمنی که امام عسکری کتابشو تعیید کردن قمیه ها به معظم روادش امن نمی کردن قبل از خود قمیه ها خود خود مرحوم ابن ولید می گفته چون کتاب یونوس به روایت یعنی نسخه است ما همه نسخش قبول داریم الا نسخه محمد از نیستان قبول نداریم و تصداد بیشتر ببایدی که ما الان از این نسخه مثل کافی از محمد از است، نسخه محمد از نیستان پس این مطلبی ایشان که نقل فروندن جای تعمل داره مسئله لهو اصلون بعدی نیست لكن اصل کردیم یه مشکل اساسی اولا اختلافی که بین این دو بزرگ بار هست کلینی و نجاشی و شیخ توسی و اصولم هنوز برای ما روشن نیست معیار نامگذاری اصل در چی بوده هنوز روشن روشن نیست وقتی نتونیم معیار رو پیدا بکنیم جد به قرائن آمه یا توصیقات آمه نمیشه قرار زد البته همه رو برهومه سال و و بعد از این اضافه کردن مثلا گفتن هر کسی که سویخ طریقی بود در مشیخ داشته باشه سقه هستی خیلی چیزان بد است من اون شیفه هر اضافه کردن انصافا اینها اینی که امیر و مامین ده نفر سقه هستن خیلی خوب اما این ده نفر سقه هست هست هر کسی در اون رواد قطعا درسته این نمیشه اثباتی هست. وقتی از یک انسان مجهول نقل دارد اما تا نقل اونه دروغ نگفتن اما خب ممکنه دروغ گفته باشه. پس این راههایی رو که مرحوم عده از اون کسایی نبودن که از روات نیستن به در بحثونه نمی‌کنه از بحث ما خارجه از این کشوری از که جزء اعدا بر مثلا تو جنگ شرکت کردنش را روات کردن انصاف به قضیه شواهدی رو که ایشون اقامه کردن اجمالاً عده از شواهدش بد نیست انصافاً بد نیست و این همون بحثی است ما از روشون شواهد فهرستی درسته از کدام هدف چون گذشته از مهم پنج دیر از وقت گذشت من تمام بکنم بحث رو یک‌ک. هدف مردم و صاحب وسائل و, و اخباری ها در درجه اول طعن بر علامه حلی بود و اون راهی رو که علامه حلی درست نیست. اون تقسیم رباعی و صحیح اونا. این مسئله اخباری ها درسته این مطلب صحیحه. این،, این خود این مطلب صحیحه. سر دروس درست مد... اختلاف در مقدمات نداشت. چون علما در قرن هشتم این بحث رو کتب اصحاب ما، روایاتشون، رجالشون، فهرستشون، فدهشون، اصولیشون از غم 3 و 4 همه پس مریار علامه به درد کتب ما نمیخوره این رو روشده و لظام بعد از علامه این مشکل درست کرد. از زیادی از بزرگان اصحاب مثل شیده اول شیده ثانی گفتن طبق مریار علامه حدیث ضعیفه لیکن اصحاب بهش عمل کردن گفتن جا برن کاسه الان تا الان هم کی به ادعی زیادی از معاصر من که میگه زبان ما هستن از بزرگان خودمون مثل من اون لاینی مثل آقا زیاد مثل من اون جدی موسوی هستن بزرگان اصحاب مثل من اون شیخ انصاری اینا ادعی زیادی هستن که اون راه علامه رو را کافی نمیدونن دونن اختصاصش به اخبار دارن انصافا راه علامه به درد فقه ما و حدیث ما و رجال ما نمیخوره اینو واسه قبول بکنید سنی ها چون از وقتی که این کارو کردن روش فرق درست کردن سونیا از سال 150 شروع کرده 160 شروع کرده 100 سال بعدش کتاب بخاری نوشته شد روی این مبنا حدیث نوشته اما ما رو مبنای علامه که کافی ننوشتیم کافی رو مبنای علامه نوشته نشده فقیر رو مبنای علامه نوشته نشده هدف اخباری ها اجمالا خوب بود و این کارشون به این اینکه ما شواهدی بدیم که این راه علامه به مجرد توصیق کافی نیست راست دارید با ارز کردیم اولا علامه میخواد اثبات حجیت تعبدی خبر بده بکنه که خبر سقه تعبدن حجیت خود این مبنی اصولی ثابت نیست این در اثبات میکنید این یک دو اون مقداری که بشون میخواد توصیق بکنه با شواهدی که ایشان داره نمیسازه یعنی مشکلی که علامه داره غیرت حرفای ا اصلا اون مقداری علامه کتب رجالی قبلی رجال کشی و شیخ و مثلا نجاشی اینها این اصلا به درد حدیث ما نمیخوره حدیث ما خیلی بارد از این کتب رجالیه دقیق سرمولی خیلی ما مدربن شده لذا انصافا اصل مطلب اینها که بخوام دگه مطلب علامه چون واقعا هم این بود دیگه تا زمان مرحومه مولا محمد امین استرابادی حرفای علامه کاملا تو حضا جا آفتاد حمله اخباری ها برای این جهت بود این جلد درسته این اصل این جهت درسته این رو ما با اخباری موثقه و نظام الان بزرگان و ما هستن که همون مبدار دنبال وسوقه دنبال خبر ثقه نیستن اصلا یه خیلی بزرگان اجلای طارفه اینطوره اختصاص به اخباری های ما نداره اما این که ما بیا از این مطلب بگیم این کتب اربعه یا کتب مشهور قطعی الحجیه است قطعی یا ثبوت حالا باج حجیه تا صحاب و صحاب که خفی و ثبوت خفه هم ثابته این ها رو نمیشه استاد این مقدماتی که ایشون آورده این مقدمات به این نتیجه منتحی نمیشه و صلی اللہ علیه